الحمد لله و, و السلام و رسول الله و علیه و سلم برادر محترم یکی از موضوعات بسیار مهم که اون مسلمان باید دقیق متوجه باشه و در فکر بکنن و من از پیشان خواهیش میگنم این درسته که اون روز من رفتان برمیگنم لطفاً لطفاً لطفاً اینه بر قاملتان بر خانومتان بر خواهرتان بر برادرتان موضوع امروزیک است موضوع بسیار خطرناک است که اکثر مسلمان ها اکثر مردم به احساسی از به این مشکل بسیار بزرگی برخود هم میگه از حضرت حضرت فردیلات و میگن کلگی از طریقه از طریقه در موره خیر پرستان میکن و من به این که از خیر پرستان کنم از شر پرستان میکنم چرا مرسان میکردون؟ به خاطر اینکه وقتی انسان میکروب بشناسه و یروز بشناسه بشناسد، بشناسه خود از اون نگاه میتونه و اگر نشناسد به شکل از ازشکال مطلع به به این, این مرض میشه عدب از کیا موکی نگذت به چرا از بیادب و عدب میگه به خاطر اینکه کار بدل که بیادب کرد منه کردم وقتی که منه از خاطر من با عدب شدون موضوع امروزی باید شما که بسیار خطرناک است موضوع شرک است از این خاطر ما شما باید این موضوع بسیار دقیق بشناسیم در از فکر بکریم و اولاد خود و اول فامیل خود در باری از این شرکه معلیفی بکریم شرک رو اصلا در لغت شریف ساختان می یک کسی یک کسی دیگیر شریک می‌سازد و شعاری خوفی عمری یعنی خدای او را نستم من هم در کار شریک کار میسازد وقتی که حضرت موسی علیه السلام کرد شریکی که در استیلاح شریعت اسلامی بسیار خطرناک است و مشکل ایجاد نکنند عبارت از شریک نمودن یک مخلوق شریک نمودن یک مخلوق در ذات خداوند در عبادت خداوند در صفات خداوند و وسیله قرار دادن انسانی خاطر نزدیک شدن به خداوند یعنی شرک شرک شرک شرک یعنی که به چهار دستر تخصیل بکنیم تحت الوان شرک اگر تخصیل بکنیم به یک چهار قسم است یکی شرک در ساد خداوند است، در اسما و صفات خداوند مطابق است، سموم در عبادت است، و چارم شرک در وسیله جویی توسط مخلوق یعنی تقرب جزدن و خداوند است. که هر کنان نزیره یکی من خدمتان عرض میگونم، الله در ذات خدواند متعال جلد جالهو چه قسم یک کسی شرک میره؟ ما که خداوند متعال جلد جالهو سوری توحید که سوری اخلاص است اخلاص یعنی دولیه شرک عمل وقتخاص خداوند انجام دادن قلوب الله و احل بود خدا یکیست اگر یک کسی ارعی آزو الله میگه که یک خدا یکی نیست دوها ای شر در ذات خداوند متعال جوهرش قل هو الله احد یعنی خدا یکی است اناله اگر کسی میگه خدا به واسطه خداوند دو توست یا سیتوس از خاطر بی شریک امور با خداوند در ذاتش الله الصمد خداوند بی‌نیاز است لمد ولم یولد ولم یک له کفوان احد لم یلد خداوند به به دنیا ناوردن و نمی آورد اگر کسی که خداوند فرزند یا پسر سر در حقیقت این فرزند شریک ذات خداوند مطارد ولم یولد و خداوند هم اصل کسی تولد نشدن یعنی پدر و مادر خداوند این استفاد اولاد داشتن و پدر و مادر داشتن استفاد است که مخصوص و محلوب است اگر کسی بگه که خداوند علیه بالله پدر دارد مثل که مسیح یا ها که خدای پدر و خدای پسر در ذات خداوند مطار جلد جلد و شریف آوردن اینا مشرف گفته میشه ولم یک لبکفوان احد و هیچکسی با همتای خداوند نیست یعنی هیچکس نمیتونه شخصیتش مثل ذات خداوند باشه صفاتمان فیزیکیش مثل خداوند باشه از خاطر مسلمان می کن که لذیذ کمیتی شی مثل خداوند چیز وجود نداره وقتی که مثل خداوند چیزی وجود ندارم از این خاطر ما گفته میدانیم که خداوند مثل فلان یا فلان است اگر گفتیم که خدا مثل فلان است یا مشابه با فلان دارن اینه میگیم که شرک در ذات خداوند متعاد جده شد واضح در اسما و صفات خداوند متعاد جده ببینیم نام های خداوند با نام های انسان فرق میدن نامهای خداوند خداونده میگم که و صفات است اما از مخلوق اصمه و صفات نیست مخلوق یک نفر نامش از شجاع پس می نام چیست نگه شجاع وقتی یک دانن کل گلدید بنامه نامش شجاست خودش بزده یک نفر از نامش سخیست اما وقتی که در کرای به بیره خدا چوب میگیره که کراکتن از او خاطر یا یک فقیره دید بر از او پای رو به کمک نمیدن از این خاطر نامش سخیل خواهرم اما در ازلش بخیل خواهرم اگر تو برای که نفت کمک کردی باز که کمک کردی؟ یک دختر از نامش جمیلن یعنی مسیان زیبا وقتی که پیجا ساله شد این جمیله نیست یک بد قوارن از این خاط فقط نام است که چی از در بارزوی بالاتر ذکر شد احیانا میشه که او سبب داشته باشه احیانا نداشته باشه اما خداوند متعال جل جلاله او نام با صفات است یعنی صفر نامی که خداوند داره با او صفت هم خداوند متعال جل جلاله متصل است یعنی اگر بگم خداوند رحیم است پس صفت رحیم بودن در ذات خداوند جل جلالوب و صد وجود داره و به ای عقیده داشته باشیم اگر خداوند بخشاینده هست غفور است، به خداوند بخشاینده است. از این خاطر این نام های خداوند اصم و صفاق است خب اگر یک نفر نام خدا مثل نام خدا میمانه مثلا نام خداوند الله جلالوب و است. این نام بچی خدا الله میمانه در حقیقت اولاد خود در نام خداوند شریف سا از وقت انسان با از گذاشتن نام رحمان و نام الله برای اولاد خود اعتراض بکنن و دونی بکنن آمدیم در نقطی دیگه که صفات خداوند چه قسم انسان در صفات خداوند شریک میشه در صفات خداوند قسم که مثلا باید ما عقیده داشته باشیم خداوند عالم است از خاطر ما میینه که انسان هم عالم است لکن شرک مخلوق بدی خداوند عالم است علم خداوند قبل از تجربه حاصل است یعنی ضرورت با تجربه ندارم من مثلا تو را گاز میتونم داخل گاز میتونم نمی که لیست کی اول نمره است تا که من تجربه کردم با که امکان شدیده بعد از او برش نمره که تو صد بودی یا اشداد بودی یا ناگاهی بودی. از خاطر علم انسان به تجربه نیازمند است و علم خداوند ضرورت به تجربه ندارد. قبل از تجربه حاصل است از خاطر خداوند آرمون غیبی و شهاده است، عالم غیبیات است انال اگر ما احیانا صفت خداوند که میگیم صفت غیب است که خداوند آشکارا و بلحانه همشه میدانند و میدانست و علم خداوند قدیم هست اگر ما یک نفر رو که علم از این هم قدیم است، پس ما به خداوند شریک آوردیم در صفت خداوند مطال این مشریک شد در چی؟ در یک صفت خداوند مطال جزا اگر یک نفر در غیب میگه که شریک هست از این خاطر وقتی که میگه در غیب شریک است مانوی چی هسته مانوی است اختیاری نفر غیب میزبانه پس این مشرک شد چرا مشرک شد به خاطر ازی که صفت غیب خداونده که او مخصوص خداونده است که خداوند عالم غیبی و شهاده را اما از قلب باخبر است اما از بیرون درست است اما ظاهرت رو اما از زاویه ما خبر نداره ولی خداوند ظاهر به دهانتون رو می‌فهمند اگر یک نفر ادعا می‌کنه که من خیلی و می‌فهمم از داخل جو هم خبر هستم، اینجا شرک آور در آورد در صفت خداوند متعال آور جلد جانوب از خاطر می‌گن فالبین مشرک هست فالبین مشرک است از این خاطر چرا؟ بخاطر خاطر اینکه صفت خدا را برای خود می بگه من خیلی برمید فالمم تو پنج را دختر و شش را پیدا میکنی 5 سال بعد از این خاطر اگر کس پیش فالبین می رمیشینه در حقیقت یک مشرک تعیید تایید کرد یک کافر تایید کرد از این خاطر برد جرال ششتن در حدیث شریف است که چل روز اگر یک نفر پش فالبین میره و میگه فال ما ببین در حقیقت این چل روز نماز عبادت خدا از دست دادن. اما اگر گپ فالبین تصدیق کرد و گفت که این فالبین راست میگفت باز این جمعه کافر شده به با آن بالای محمد صلی الله علیه وسلم نازد شده یعنی اگر گفت فالبین تصدیق میگنن در حقیقت و قرآنی از این شان کافر شده است این در صفات است علم داریم علم انسان ناقص است علم داریم، علم انسان در یک تخصص خاص است علم انسان، به تشربه نیاز دارند علم انسان، احیانا می باشه، احیانا نمی باشه بعضی چیز ما من می فهمم علم خداوند متعال تا جلد جل جلوه، علم قدیم است علم که به نیاز ندارند از خاطر، اگر کسی به علم خداوند به کسی یقین می باشه که این مخلوق همه علمش مثل علم خداست در حقیقت در صفات خداوند متعال جلجال رو این شرک شر در صفات میگه شرک در عبادت قسم سیوم شرک شرک در عبادت است شرک در عبادت چه قسم میشه خداوند متعال جلجال رو یک سلسله از عبادات را بر ما تقییم کرده این عبادات که خداوند متعال جل جلاله برای ما تعیین کرده، توسط آیات و قرآن و توسط احادیث پیامبر صلی الله و علیه و سلم، این ثابت شده است. بناحال هر عبادتی که نص در وجود نداشت، باشد، بدعت است. در ازی یک بحث خاصی در بدعت خواهی داشت، من توضیح نمی‌دهم. الوبه اگر کسی ولی ثابت میشه که اینی عبادت است نماز عبادت است روزه عبادت است قربانی کردن عبادت است نظر کردن عبادت است ان اگر یک نفر یک را که ن عبادت مخصوص خداوند است ما در وقت نماز خود اگر سی رکات نماز خونیم و اگر نوافل می‌کنیم صد رکات می‌خوانیم در هفتصد رکاتش روزانه صد مرتبه به خداوند چی می‌دید؟ ای نفت بود خدا یا خاص تو را عبادت می‌کنیم وقتی خدای عبادت می خدایا خاص تو را عبادت میکنیم اینجا عبادتی که خاص برای خداوند متعال متعابل جلجای شد خود به خداوند احب کردن، پیمان کردن که خدای خواست عبادت برای جو هست وقتی که عبادت برای خداون تزدیل شد و خداوند این دست را برای ما در فرآن ازیم شان داده که تو در کل نماز های که خدایا خدا خاص تو را عبادت می از ازی که نماز خواندی این درس است که در خارج نماز که در نماز به خداوند گپ زدی ب خداوند تعهد کردی هم خارج نماز هم با و به اهلخد قال باشی عبادت تن و از خداوند به کس دیگری نکنی اگر کس نظر خدا بر یک مخلوق میکند اگر کس قربانی خدا بر یک مخلوق میکند اگر کس نماز خد بر کدام مخلوق می اگر روی خودن طرف یک مخلوق میکن در حقیقت ای در عبادت به خداوند این مخلوقن شریک ساختن از این خاطر اینجا این شرک در عبادت میگه ما شما تمام تمام عبادتهای خودن خاص با خداوند متعال جلد جلو رو بکنیم این قسم چه همه شرک، در تکربجوری و قریبسازی و خودم نزدیک ساختن به قسم بر خداونده مطالجی ها به چه قسم؟ مشرکین قریش آدم داشتن وقتی که قرآن پیشوندم که خالق آسمان‌ها و زمین کیست؟ لا یقولون الله ولا ان من خلق السماوات والارض؟ قرآن ایشون برای میکنن که اگر از اونا سوال میشد که من خلق السماوات والارض، آسمان زمین کی خلق کرده؟ لا یقولون الله، ملتکه صوت الله جل جلاله رو خرد کردن. پس شما چرا A B B مشهد اینا رو مشهد میوتن می پای چرا بزین از اینا مبارزه کرد چرا امرو از اینا جهاد کرد چرا اینها مخالفت با پیغمبر کردند؟ الله تعالی می شناختن و میگن که خالق آسمان ها زمین است می اینا در عبادت خدا هم مخلوقات شریک می زادن. چی چه شرک تقربی ولی می که یا ابو جهل یا ابو لهب او ابو جهل او ابو لحب. او این نفر به تو مشکستی خلیدونی خدا را چرا میشه بطه ها ها در اطراف کعبه آوردند، نیروی انسان‌های بسیار خوب بودند، انسان‌های نیک بودند، این انسان‌های بودند که بسیار خوب بودند یا ما را به خدا نزدیک می‌سازند، لیو الی الله ظلفا اینها نیک بودند ما را خداوند قریب می‌سازند. اینجان خوب خداوند و متاولچ و که این انسان‌ها مشتاق هستند. ای بود چیکاره است که تو میگی ایمن رو به خدا قریب میسازن؟ چرا خدا به تو قریب نیست؟ چرا خدا به تو نزدیک نیست؟ وقت اذا سعدک عبادی عمی، خدا هم نرس داد برای رسول الله صلی الله علیه و وسلم و ای درس از بر ما هم اذا سعدک عبادی عمی، وقتی که بنده های ما در جایی ما سوال سوال کردن، اجواز نبید که قل ای پیغمت تو برای شروع بگون، نه، در این قریب غده خود بسیار میی که از خاطررد ندار که من و سیله و وا شد انسان مادر بر دو بسیار مهربان از خداوند از هفتاد مادر و تو مهربان تر پس تو چی که معادرت هم واسه تن سازی داره خداوند؟ خداوند را تر از مستقیمن به خداوند بطاقه جمعه جمعه جنر ارتباط بگید. از این خاطر تمامی پیغمبره را وقتی که ما ما شما میبینیم تمامی پیغمبره و اطباع خدا دعوت بگردن که از شر دوری بکنید. و لقد اوهیه و الذين من قبلک کرد لان اشرکت لیحبطکنا لا عملک بر پیغمبر سلام میگه که ب تحقیق وحک فرستاده شده بود بر تو و برای کسای که قبلسته بودن که چ چی, چی سیه بو که لان اشرکت اگر تو شرک آوردی لیحبطرنا عملک باز اعمال تو از بین میره یعنی شرک آتشیس که خدمت اعمالن کمش درک میتن ولاک یک نفر روزدارن ۱۰۰۰۰ نماز نفت بکنم اگر به خداون یک ذره هم شرک دیره مثل ازی میشه که گم گردم در خدمت اعمال خودم داد و تمام اعمال از ظایر میشه په اصاسی ای آیت قرآنی سوری زمن آیت ۶۵۰ و افقال لقمان رو نبیدهی ببی حضرت لقمان فقط چگه که خود نصیحت بیکن مثل که من برای انس نصیحت بکنم با افخال لخمان و عزت عزتاللخمان برای وجه خود میگه یا فونه ای بشه من لا تشرک بالله اوشی کو به خود روانی کسی به شریک نسرسیم اِنَّ الشِرْكَ یک سون بسیار بزرگست سولی لخمان آیت سیز دامان. شما ببینیم که اینجا حضرت لخمان برای بچه این خود میگه ای پسر یا فونه یا او بچه شفقت شفاقت میکنه سر اولاد خود که او بچه ای من بسیار است. میدوانستم احیانا تزغیر علمان یا تشریف دارن که میگن تسخیر ساختن یا کسی در بچه گفتن برای شفاقت است میگه او بچه اکمه او توتیتنشی گرنه لا بالله هر کاری که میکنی خداوند میبخشه شرک با خدا نبر که ان شرک لظلم عظیم ظلم بسیار بزرگ است چرا شرک بسیار گناهی خطرناک است چون شرک احترامی مستقیما به ذات خداوند متهاجم است از این خاطر گناهی بسیار خطرناک است شاید انسان احترامی به یک مخلوق بکنه پس او مخلوق را بهجور نابادش نم اما وقتی ای ای انسان پهیترامی به خداوان بگن از ایفاده ایره ازدار روکمان به این نشر کرد لفظون محافظی آغاز شرک یا انسان پرستی از کجا شد از کجا انسان پرستی شروع شد انسان پرستی ببینید خداوند متعال جل جلاله پیغمبران را فرستاده برای یک کار. و شیطان آمد که اینم کار پیغمبران را نقص بکنند. کل پیغمبران آمدند به خاطر یک کار. برای چی آمدن؟ که توجه انسان از مخلوق به علت شد. یعنی انسان ان و نسکی و محیا و مماتی لله رب العالمین تا که انسان تمامی اعوالش نسالاتی نماز من و نسوکی تمامی مثلا سک من تمامی عبادات من و محیای و زندگی من و ماماتی و مرگم، لله رب العالمين کنش مخصوصه الله جل جلوح است اینجا تخصیص لام لله این علمامه که لام از حرف جرس لد تخصیص برای مخصوص ساختن یعنی که کل پیغبست هم گفت که کل چیز است خاص برای خداوند متعال جلده جلده ایچ کار انسان در نظرت نگی آله اگر گفتی که موالا میمانی می کنم تا بچه های کاکایم خوشحال شد کنید بارتان به خاطر خداوند متعال جلده میگه آغاز شرکشی شد که شیطان انسانها رو چی وظیفه میداد شیطان انسانها رو میخوااست که چیزی کنن؟ آمد که زد پیغم کار کنن پیغمبر همبر گف که گفت که به خدا بساز این انسان دا که تو میبینی این مخلوق است این فران می انا هم بکلهعلان می گفت من پرورددیگ رو تمسم خاال چرا مسلمان شد؟ خانم به فرهان برش که او فراهیتو تو مدم و که میگه که من خدایان هستم. لاکن می که دندان بر بودی تاصبح در لله هم این چی خصم نمک بکنه میشه خدای بزرگی میشه یک دمدار درست شوید تاسوب خب نداری پس خداوند خود ذات قوی میباشن از این خاطر برای بر بر بر خارم فران مسلمان شده بود چون میفهمید که فران یک انسان است. یک چیز که هیچ کار کردن رو میتونن بناهن آغاز شک از این پیدا شد که شیطان آمد که زب پیغمبرها کار بکنن چی کنن؟ یک کار میکنه شیطان چی کار؟ کارشی که توجه انسان از خارق به مخلوق می‌سازد. ما میمیم که خداوند زل جلال است شیطان میگه نه این مخلوق زل جلال است ما میگو که عظمت عظمت خداوند متعال جلال جلال است سبحان ربی العظیم در نماز میخوادیم که پاکیست ای پروردگار که شایستی عظمت تو هستی تو عظیم هستی لیکن شیطان میگه می نه نه نه نه نی, نی خدا العیاض بالله عظیم نیست اون نفر عظیم از برو بر از او سجده کو برو بر از او سر تعصیم بان خداوند میگه که می سر ها میگه که ن اصل شید از کجاب پیدا شد که بعضی مردم ها ترس داشتن از مرده ها از مرده ها می ترسیدن اشتوکای خدا هم از مردها ها مهت وقتی که خودشان مهت ترسیدن اشتوکای خدا از مرده ها می ترساندن اینجا ترس از مرده ها در قلب مردم پیدا شد از این آواز شرک بدبختی از اونجا پیدا شد و ایک کار در جوامع ابتدایی تاس از مردگان مردو را به شرکشان زیر آنان مردگان را با تناق ببستند و ها را محکم می‌کردند تا بدین وسیله از بازگشت مردگان جلوگیری کنند تاس از مردگان آهسته آهسته با احترام و انجام و پرستش نیاکان مبدل گدید ها بکرن مظاهر از این عقایده در ژاپن دیده می این عقایده انوز هم در ژاپن است با بوتان در بسیاری موارد مجسمه های نیاکار بوده از ایرا از کتاب آشنایی با عتیان بزرگ تألیف حسین کی در رست صفیه خب شرک در زمان موسی علیه السلام چه قسم پیدا شد وقتی که موسی علیه السلام برای چند وقت رفت اون کسیش شکاله که میفهم منم میخوام که از موضوع خارج شوم اینج سامیری سامیری چیکار سامیری یک نفر کافر بیدین بود رفت اموت طلاها و اطرار جمع کرد از او یک گسالگه که ساخت و او از آثار قدم حضرت جبرائیل علیه سلام حضرت جبرائیل علیه سلام که میرند اما جایی که قدم عصبش مانده میشد او سبز سر میشد ای سامری فرمید که در کدام گفت از آثار قدم از او یک مشتخاک گرفت در دان گساله انداختی گساله کمک شور خورد وقتی که شورک خورد آمد شام گفت که اینی خدای تانست گساله پرستی از اونجا شروع شد از زمان سامری که این گو را بر عزّنا جور کرد و اون دو باز و حقوق موردش مردی شبادت میکند بازیگام میکند زندی از طریق عبادت میکنند. حالا یه را پرستش میکنند. چیز ببینی که انسان زلیل میسازد چی قسم زلیل میسازد. که اشرف المخلوقات در مقابل ارزل المخلوقات قرار میده. در مقابل یک مجسمه پیتر و پیروه در مقابل ازور را قرار میده تا طور پرستش بکنم. در زمان عیسی علیه السلام شیطان باز هم آمد در لباس شخصی بنام پولس یهودی. این یهودی آمد که چه قسم ما دو قسم شیطان داره. یکی های انسانی داریم که انسان را دعوت میکنه که نمیری یک سینما بریم که شیطان انسانی است. نمیشه اید. و خانیش که مجرد رفتن می‌شناسی افتاد از خود آدم میگه شیطان احسانی نمی خانیش که رفتی تو میگی یک فیلم برات چاله کنم یک و برادر من بر دیدن تو اگه میخواستم فیلم سایکو خودت 15 رو به 20 دارم که سینما برم حالا خانی تو رو خانی تو چرا سینما جور کردیم من اومدم که پشتان تو تو باش تو یک تو سر یک, تو سر یک سر او شیطان به پیش, پیش تو امدم. در شیطان اقتصادی که با زور مرا چیز میگیره با زور دادسیت میکنه شلون میرید دیستی نداری محبت نداری الخ میام خیچه رو شیطان رو را آوری در مقابل من استاد کردی حتما باید من با سازت رو بشنوم حتما باید دشمن های خدا 24 زاد من گفت تشریب کر یا خودت مسلمان شو یا مرا مسیحی ساست این خود اردا ار بالکفر کفر تو چون رو این انسان اینسان بیدین و گمرای که کفر رو رشد بر من رو بزرده من رس میشونی و باز دوست دوستم در حقیقت تو دوست شیطانی منستی که وقت مرد در گمراهی و در براهی و در رای شیطان مصرف بکنی. ازی خاطر شیطان باز آمد در لباس یک انسان به نام و شاول تانتوزی، اینجا آمد الا یاز بالله تو کد بالای خداوند متعال جل جلاله متهم قرار داد حضرت ایسای مسیح علیه السلام که حضرت عیسی علیه السلام از دیگر پاسخ گفت که حضرت مسیح بچه‌ی خداست الا یاز بالله خداوند به با بچه چی نیاز داره من نیاز دارم که بچه‌ی واسه بیلم خداوند با تو پر ذات قدیر است او با اولاداشان چی نیاز دارند از این خاطر شن در زمان عیسی علیه السلام به او شکل نشئه پیدوکات و آله هم مسی یا مشرک شدند چرا بر اونا گفتن که حضرت عیسی بسیار شخصیت بزرگ بود این پیغمبر خدا بود باید به قبر پیغمبر سجده کنی این پیغمبر تو رو آسمان بالا میکنه او پیغمبر هم مخلوق بود آمده بود که ما و سجده بودیم در برابر خداوند بر از این بود که ما را هم مشرک بسازا و چیز بسازا از این خاطر شک در بین عرب ها چخص پیدا شد از زمان نوح علی اینه می که مثلا بودهای پیدا شد برامه این با شریف شیست که در خواهی سبیات که آقاده بود که لا تذرونه آلحتکم ولا تذرونه و ولا سوا سوا ود ود یک بود بود سوا یک بود دیگه بود یا موس بطه دیگه بود یعوق بطه دیگه بود نصر بطه دیگه بود از این خاطر اینا از اونجا اینی بطه ها را انتقال داده بودند. این از زمان نوح علیه السلام از این خاطر این بطه ها را اینها بنامه خوبن و نام لات و بنامه منات این در بین عرب ها هم رواش پیدا کرده بود و اینها احیارن ببینیم خداوند انسان اشرف المخلوقات خلق کرده انسان شرافت و کرامتش بسیار عالی است این انسانی که اشرف المخلوقات است باید بشنازه که من از جن که شریفتر هستم پس من چه رو جنسش رو بکنم ما از ملائکه غیر شریف تر است ما چرا بر ملائکه سر خدا سر تسلیما قرار بدهم ما از یک انسان دیگه کرده هیچ کمی نداره او هم دچشم داره ما هم دچشم دارم پس تو هم مخلوق است ما چرا سر تحظیم بر از این مخلوق پایین بکنم اگر سر با عظمت بر خداوند اشرف المخلوقات زوختان پویید به ذاتی که زل جلال است بر خدا پایین بکنم حتی دست والدین خود و دست بر استاد که ماش ما میگورم با دست سر به دانو پیش بکنم احترامه از عظمت خداوند متعال جل جلاله حفظش و کرامت من هم حفظ بشه تا سر من تغییر خداوند مکرر ساخته پیش هیچ مخلوقی پایان نشد خب این مشکل در الشلته حبشی چی قسم بود ازاد بی بی هارشه رضی تعالی ها میگه که ام حبیبه و ام سلامه در مورد کلیسایی که آن را در حبشه دیده بودن در مورد آن کلیسا و تصاویری که در کلیسا و پیغمبر صلی الله علیه کردن گفتن اونجا یک کلیسا در بین کلیسا که او را میگن جای عبادت خداوند متعال است در اونجه ها را بند کردن تصویر ها را بند کردن یا بر پیغمبست هم کسا کردن حضرت پیغمبست سلام آف حالی وسلم برشان گفت آنان کسانی هم که هرگاه کدام شخص نیک و صالح در بینشان وفات نماید ببینید در باره مردم حبشه پیغمبست سلام چی گفتن گفته که او مردم کسانی هستند که اگر یک انسان نیک و صالح در شان وفات نماید، بارای قبرش سجدگاه میسازن قبرش رو جور میکنن سر قبرش بسیار تکه های لکس لکس ها میسازن همین تکه های لکس لکس ها مجوسی ها رو داشتن که در دا سر مورده های خطپتن رو بسیار زری کنن و گلچینی کنن مگن جمال الوجه و خبص نفوس کمم دیرن على قبر المجوس یعنی نفر چیلی بسیار مقبول داره. دلش مردار است این مثل چی بود است مثل که در سر یک قبر مجوسی یک رود اسمور لوکسفاتی بنابراینش بسیار لوکس است در داخلش آتش در گرفتن از خاطر میگه که پیغمبر صلی الله علیه گفت که این مردم های حبشه کسایی بودند که چی میکنن؟ هرگاه کدام شخص نیکو صالح در بینشان وفات کند با روی قبرش تژدگاه میسازند و در آن تصاویری را رسامی میکنن. این مردم برترین مخلوقات الله جل جلال در روز پیامات می‌باشند. این تفسیر یه ای حدیث شریفه. در صحیح بخاری در کتاب الصلاة نقل شده است خوب، امت حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلام چه قسم از شرک نجات یافتند ما که امت پیغمبر صلی الله علیه و هستیم چگونه از شرک نجات یافتیم الحمدلله موحد از و و نیستیم بخاطر از به که خداوند متعال جل, جل, جل در آیات قرآنی بر ما درس داده که مفسرین عالمای کرام بر ما این درس میگن چرا حضرت علامه ابن کثیر رحمت الله علیه چی میگه میگه ببینند اگر صفت بزرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلام می و لیاقت از او را اونمو صفت خداوند متعال در روزی که پیغمبر خدا مهمان کرد برش امروز مهمانی برش میداد این پیغمبر من این امروز این صفت بسیار عالیه که تر را من مهمان کردیم د این مهمانی این صفت این لقب این مداله این نشانه برات میدون و این نشان و مداله که خداوند بر پیغمبر خود داد در وقت میرا چی بود گفت که سلحان اللهی اسرا به حدیه. کلیمه عبد یعنی به بهنده خود بناهن اونمون نشانه که خداوند برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم داد مداله که خداوند برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم داد مدال بندگی از اون نسبت بندگی به خداوند متعال جلد جلد بزرگترین نشانه پیغمبر صلی الله چی بود؟ عینمی بود که او را خدا بگه. و پیغمبر صلی الله علیه و آله حدیث را برای ما و شما گذاشته که اگر به این حدیث عمل بکنیم ما هم از شر نجات می چی گفته پیغمبر صلی الله علیه و سلم؟ حضرت عبدالله الله تعالی عنهما که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه برخوردت. علی بن اباصم سمع عمر سمع عمر الله عنه که عزازت عمر دادم شنید که میگوه علی المنبر عزازت عمر دست به منبر استاد متوجه که الله عليه وسلم او له ملغ ما خود سمعته یعنی بهوش خود حضرت نبی کریم صلی الله عليه وسلم شنیدیم که يقول لا تطرو ني كما أطرت النسارة ابن مريم شمو بسيار مر توسيف زیاد متحسرایی در باری ما نکنیم مثل که نسارا در قسمت حضرتی عیسی علی سلام کردن که بلند بردن و بردن و بردن و بلاخره این مقام از رو از خدا هم کرده بلند درس آردن و او بچه خدا قرار دادن و این روز مجسمه شو آوردن در کلیسا. شما ای این کار نکنید؟ چی کنیم پیمای رسول خدا؟ بر ما درس میداده. که فقور و عبدالله و رسول. بگویم که ای بنده خداست و رسول خداست. وقتی که ما بندنده خداستم بهنا مننم ایتاننم بر ق بچه بودم اگر بچه آه ایتانستتون بر خود میلادم خودم بچه جوان نداشتم ای مردم بواامم که من بنده خدا هستم من خودم بچه جوان نداشت و رسول خداص الله علیه وسلم ای با شما هر و سیرت ب الله برسالاال بزن من میریخوریم که بچه جوان نداشت چرا نداشت؟ با خدای خودش ندارد. اگر خودش میتونه که بر خود بچه جوان بده، 20 بچه جوان، 40 بچه جوان بر خود میاد. تا که در روزی که از خالص میکشید و رفتم قور است سالو جو پوب شد از مشرکی در اونجا بچاشش بهش دفاع میکرد شب شیرا داشت شب میبود مقاومت میکرد لا که پیغمبر صلی الله علیه و سلام در وقتی که بچه‌گکش وفات میگردیو که دل ما خون است اشک از چشمای جاری میشد و میگفت که یا ابراهیم در فراق تو ما جگرخون هستم لا که نمیتونست که او را از مرگ نجات بده وقتی که رسول خدا صلی الله علیه وسلم که محبوب خود تو هست. تو برای کسی بچه بده آیا کسی دیگه میتونه برای کسی بچه بده که موافقت در خبری از او میخ بزنیم که برای ما بچه بدی. گوارا گفته حال که برای ما بچه بده پس چی شد؟ باید هم برای خدا نمیتونه. حضرت امام حسین رضی الله تعالی و در کربلا جام شهادت نشید. میگن در واقع که از دش نگی هر شده بود و یک قطر آب گذشته نمیاد. خیلی وقت خدا و لعنت رسول خدا و لعنت حضرت علی کرم الله و وجود از قسمت از رو نازل است که تو بنامه من بنامه مقدس دارید انسان بنامه کسی که بنامه کسی که خانمش میگو که من شعب دفعیم که جسد مبارک من نامحرم نبر بی بی فاطمه الزهرا تو میری به نام رقص سیل میکنی و خود میگی که من امت رسول خدا و وایم دوس عزتی علی کرم الله وجه استم الا اعوذ بالله و ایش وقت اون دوسیت میشه از خیال حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ها کسی ابی بکاسم بهترین لحظه خداوند مطال جل جالهو که بهترین لحظه بود او لحظه بود که خداوند متعال جل جلاله برای خود در وقت معراج عزیزان کلمه افت بهترین لقب، بهترین عزت، بهترین شرف بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. چرا با دادن این شرف بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم شرف التوحید بر امتش حاصل می از شرک نجات پیدا میکنن و ما امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسول خدا صلی الله علیه و سلم ما دوز داریم جایز ده فرق سر ماست. ما پیغمبر خدا ازو دفاع میکنیم. کسایی که در برابر پیغمبر بل تجاوز میکنن دیدیم که مسلمان ها خودو خود قدر افتخار در به خاطر رسول خدا صلی الله علیه و سلام لكن وقتی که در مقابل خداوند متعال قرار میگیرد گیره میفهمی که خداوند ذات عزوجل است و محمد صلی الله علیه و سلام عبد الله و رسوله بنده خدا و رسول خدا است. از خاطر صحابه کرام ایمان داشتن حضرت بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ما شما در سیرت که یک دیدات صحابه و ظافته پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله هایجانی شدند آمدند و گفت بسیاریشون قبول نمی‌کردن که پیغمبر خدا میمیره هیچ کس جرأت نمی‌کرد که میگه ف بزنن حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ در مقابل محراب در مقابل ازراخ ایستاد گفتنیش که جرأت نمی‌کنن حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ گفت که ما جرأت چیزی که حق است چیزی که در قرآن میگه آمد ایستاد گفت کسی که میگه که محمد من میگم که محمد صلی الله علیه و آله و کرد چرا گفت قرآن میگه که محمد و ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسول اف امات مات محمد صلی الله علیه و سلام دیگه چی کسی دیگه نبود رسول خدا بود قد از پیش از دیگه پیغمبر هم آمده بودن رسول های اومده بودند آیا مود بر ما میگه که اگر ای بمیرد او کوتل یا کشته شود الان قلبتان را کن آیا شما باز برمیگردین از نیروتان از عقیدتتان و مین قلب علا و کسی که بر از عقیده اسلامی فلن یدونه الله شیعن ای به خداوند متعال جل جالهو ضرر رسانده نمیتونه و سیجز الله شاکری لیکن خداوند بر کسایی که شاکر هستن، شکر نیمت خدا را میکنند که خدایا شکر که را دول خدا را نازل کردی، خدایا شکر که قرآن از امشان برای بر ما ماندی، شکر میکرد، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم انسان بود وفاد کرد، او هم مثل شما یک انسان بود وفاد کرد، از این خاطر اگر شما باز خدبه خدا برشان بیان ای مردم، اگر شما محمد عبادت میکردین، فعود کرد. اما اگر خدا را عبادت می خداوند حی و لایه بود است. موقع حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چی بود؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که در مقابل حجر الاساد استاد شد. فامید که سنگ هیچ زراره به کس رسانده را چوب هیچ زراره رسانده را میگه تانند. می گرد جامعه که اون است که می بوسند از کرم پیلن ها شد با عزیز نشست روز چند لاجرم هم چونو می‌شد که او می‌کرد ایتکا ما هیچ نفوذی به رساندن نمی‌تونه که ما اوتکر را قایچی بکنیم و باز به در, در, در آخر خطوره نصب بکنیم حسات عمر رضی الله عنه با اونم و عقیده قوی‌ای که داشت و دوری از شر بود آمد در مقابل حجر الاسود قرار شد بعد چ گفت که ای سگ سیو ما نه یک تو تا سگ سیاسی تو هیچ نفوذی بر ما رسوندن نمی‌تونی این چی نه مرا کشتن می‌تونی نه مرا بچه‌دادن می‌تونی کار کرده می‌تونی صرف ملا خاطر یه قسم به وسا اگر رسول خدا ترا موش نمی‌کرد ما ترا موش نمی‌کردیم. لکن چون پیامبر خدا ترا منز یک سنگ مقدس بو بوسیدم ما هم ترا بوسا میکنم ا خاطر بسیاری کسایی که نام حقیقت انسان با کرامت زیر پای میکنن و سر س جر وها رو میکنن ما وقتی چند پای تو با ش را میگرد با ت از کجا مییوای س بر مجر وسا رو ماش میکنه ما جر وبت یک س انسان از او در اممتش ترس. تو انسان زیر پای میکنی مردم درس داد کرد نباید سنگ پرست باشیم نباید تکه پرست باشیم نباید چوب هست چوب چوب چوبه لبقله خود بگیریم پس بود از دو سارو ما خمده بی کنم او چوب پرست من خواهد اقل بر رضا چوب یک چشم و بیریو چیز خواهد جور کرده میشه به سر شنگ یک دختر مقبول آورده کسومش در اگلی خوشت بیایم اما تو چی میکنه چوب ناخیده در, در میشه که داره از دست میگه ازیت های فاطمی نباید بیکاره بکنن جزای شر شرکتیست من میخوایم تا سرچشوه خلاص میگیم ایم که داریم چه قابلاتی داریم جزا و از این خاطر زودی خلاص میگم ترسیدن میگم ایم که حالا که ما میگم جزای شرک است شرک که خداوند متعال میگه: ان الله لا یافروا عن یشرک بهی و یافروا ما دون ذلك لما اگر کسی با شرک بمرن در دنیا خود اگر امروز اون روزا ما کدا مشتبای کردیم باید به خداوند با خدا رو جوه بخوریم و باید خدا یا عبادت ما کل چیز ما مخصوص تو از خدای مکنان کردیم میباشه اما اگر به شرک یک از نیمونم خداوند متاجر جا رو جارو میگه در روز آخرت لا یفرو اینجور شرکت بیهیم شرکم شرک, بیه. شرک میباشه و یک ما آدو نظر و دیگه گناه ها به هر کسی که خواست میبخشه برای اما شر ست فی بخشیده نمیشه را بیشن. از خاطر انسان باید از شکر خدا دور بسازم آیت چند چند است الله الله لا یوشته که بیه و یک فروم آدو نظر کلمه و من یوشه بالله فقط قام را دوالا مبینه سوره نسان آیت یک حضرت معاذ در سفرش میگه حضرت نبی کریم صلی الله علیه و salam برای گفت که ایامیدون که حق خدا برای بندگان چیست؟ میگه حق خدا برای بنده‌ها چیست و حق بندگان برای الله جل جلاله چیست؟ حق خدا برای بنده چیست و حق بنده برای خدا چیست؟ خداوند میگه پیغمبر صلی الله علیه و salam گفت که حق الله جل جلاله بالای بنده این است که او را عبادت کنند و با خداوند چیز را شریک نسازند و حق بنده برای خداوندی هست که هرگاه کسی شرک نیاورده باشد او را عذاب نکند حدیث نمبر 264 بخاری شریف حضرت عبیق را در دوتان را میگه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم گفت از حلاکننده ها اشتناب ورزه باز از جمعه حلاکننده ها چیست؟ شرک به الله و جادو که حدیث نمبر 5322 دو بخاری شریف است و حضرت ارسلان روایت میکرد که از نبی صلی الله علیه و در مورد گناهان کبیره پسیده شد فرمود که در رأس گناهان کبیره شرک به خداوند متعال جل جلاله قرار دارد این دو قسم است یکی شرک بزرگ است شرک اکبر میگن و یکی دیگه شرک اصغر است شرک اکبر اون را که کسی در ذات خداوند در صفات خداوند، در عبادت خداوند، و با تقرب به خداوند واسطه جویی بکنن، اینی شرک بزرگ گفته میشه که این بچه و شرک خود، شرک خود چیست؟ او ریا هست که انسان یک کار ریاکاری کاری بکنن. مثلا در توی خود، مثلا زیاد کنن تا مردم او را خود بگوید. خدا بر بگوییست، طیفنبر بد بگوییست. اولمو دین باد بوگوش لاکه موکه مردم خوره کون خووبه یره واسه یک شکه خرد میگه خرد میگه اوا از درسایی که ما از استفاده میکنیم صرف از این موضوع ما خلاصیم صرف میدرسایش از چند جمله با ویسه درسایی که از استفاده میکنیم که اول ما شما باید به خداوند متعال جل جلاله جل احترام داشته باشیم وا احترام خداوند متعال جل جلاله جل بود از چی است که به ذات خداوند متعال جل جلاله جل کسره شریکی نساست بگوییم خداوند است، ضرورت به بچه و به پدر و به مادر و به فرزند و به شریک نداره. قول هو الله احده هر روز با معنایش بخانیم با معنایش باید قول هو الله احده دقیق بخانیم و به او داشته باشیم این چیز است. دومی که ما شما دست دومی که برای ما میتر که ما شما باید صفات خداوند متعال جل جلاله مثل صفات خود قرار ندید بلکه بگوییم که خداوند عالم از عالم حقیقی بواسطه حادث علم خداوند قدیم است و ما عاجز هستیم در علم خود به تجربه ضرورت داریم. مثلا بسیاری کسا که خدا کلم زبون ها را خدا که به زبان نیاز نداره. این زبان خوب وسیله ترجمه گپه ای برای بر من. اگه من به زبان راستون برام تری گپ میذاری. اگر با شو زبون راستون برام پشتو, زبان پشتو انگلیسی زبان بر انگلیسی میگی. اما خداوند در مرزت که یک فکر میگه دعور خداوند میفهمم، بنابر خداوند به وسایل نیاز نداره که تو آمدی ایجاب و ایزدی دهی که اقیادت خراب میکنی. ازی خاطر خداوند با وسیله و زبان وسیله تکلمت و خداوند به وسایل نیاز نداره. ازی خاطر موسما باید عقیده داشته باشی که صفات خداوند قدیم است. علم خداوند با علم انسان فرق میکنه. دست دیگه رو که ازی میگیم که ما و شما نباید نامهایی که به احترامی با خدا سر عقلاهای خود بانی. چی نامی روانیم که مثلا بگویم که من بنده خدا نیستم بنده مخلوق هستم مثلا بگویم که محمد خالق است باییم نمانیم بنده رسول خدا به میگم من بنده رسول هستم محمد الله محمد احمد صلی الله علیه الله محمد این نام را یا اینو بگیم که مثلا مخلوق برمداد فلانی خان داد از از این نام ها باید ما اشنا بکنیم بلکه نامای را باره که در بوجه توحید خداوند متعال جل جلاله و سبحانه جل در عبادت خداوند متعال جل کس را شریک نکنیم یعنی هر عبادتم خاص به خداوند بکنید نظرم بر خداوند قربانی برای خداوند. کل کار خدا برای خداوند متعال جل جال, جال بکنیم. این درست هایست که ما از اینا میگوید. در قسمت دوستای خدا وفعی هم برای خدا و شخصیت های بزرگ احترام زیاد داشته باشید. تو نشه که احترامی که مثلا برای یک پیاده احترام میکنی برای از اون عریضه در برای که تو پیاده جان بگیریم از رئیس جمعور برای این از ای خاطر وقتی که ا عریضیت هم میبری پیش وزیر یا پیش رئیس جمهور پیش پیدا نمیزی دیگر که بیادا جان توی زمزا کن اده که تو را بگیم این پشت بیدار که تو را کار ندارم سکترش برا بگیرین اینه بیادر همی عریضی بفره مستقیمن و خداوند مدار جل جل روهو باید ما توی مستقیمن عرض خدا و خداوند بکنیم که یاکر عبود و یاکر سایی باز بود با بگیم که اهل نصرات مستقیم وقتی یا کرامل دو و یا کنسانیل در نماز گفتی واسمی که خدای هر برای راست هدایت کو از راه ابراهیم نجات بدهی و دعا میکردی که خداوند متعال ها را جلد, جلد روح ما را از شرک و از مخلوق پرستی و نجات بده سبحانك